به دو گفت چاه از هنرها چه به که گردد بدان مرد جوگنده مه چون این داد پاسخ که دانش به هست خردمند خود بر جهان بر وند جان و خرد این برتر اندیشه برنگزرد درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه پنجره‌های رو به مساب یک سال یک سال هست که هر یک شب شب در خدمت استاد عزیز آقای فریدون جنیدی هستیم دکترم نگفتم <تص> سلام عرض میکنم آهده. یک سالگی مبارک بعد کیک میگرفتیم در آین رو باستان کیک نبوده چی بوده آقایتون خان میچیدم هفت نو میوه بوده برای از یزدان و اینکه نشون ببین که ما میوه های گوناگون رو در فصل مختلف میکاریم و از مادر زمین بهره میگیریم جشنها با میوه بوده و با ملاحظه شد. نیجات شینیجات خوشمزه ما هیچکونی ما اینا رو نیاوردیم و فقط آب خونه که نه آب... شیرین کمی شیر برای ما مطرحه. من یک نامه ای دریافت کردم امروز از استاد بازنشسته به نام تهرانی که هم خطاب به مسئولین برنامه و هم خطاب به من در دو نامه مختلف خیلی ستایش کرده بود و از اونجای که بسیار تمجید از من کرده بود من واقعا دیگه شرم اومد که این ناماره بیارم بخونم منتا یک بخشش رو از این شخصی که یک عمر در آموزش فرزندان ایران به سر برده خوندم که من در سختی های روزگار اول به داور یکتار پنامه میبرم و بعد به این برنامه شاهنامه خب این خیلی خیلی مهمه ما شیرین ایرانیان رو بخواییم بهتر از که خودمون خواسته باشیم اونجا شیرین چیزینی بخوریم نه این برنامه به خوبی نشون داد که ایرانیان جویا هستند ایرانیان تجربهشکر هستند میخوان بدونن که چه بر گذشته و خبر دیگهی که میخوام به شما بودم اینه که جاند. هفته پیش دختر ده سالهی به نام سارا بحار البته مادر و پدر این دختر هر دو در آموزی پهلوی من آ این دختر ده ساله در یک مسابقه که در مدرسهشون داده پرداخت شده یک مقداری بونای کتاب پیش دادم. بونای کتاب رفته فروخته یک مقدار از ذخیره خودش پرداخته و سعی کرده تا اینکه که بتونه باهای یه دور شانمار رو فراهم بکنه خودش بیاد با, با اتفاق مادرش خودش دیده. بیاد بخره. ببینید یک فرزند ده ساله به کجا رسیده که تصور میکنه که باید شاهنامه بخره و از پول خودش بخره اینا چیزایی که گفتم که شیرینی است که به کام ملت ایران و فرزندان ایران شیرین هست و بدونم یکایی که شنوندگان که دیگر شنوندگان هم همانند اونها برخوردار هستن از پندهای نیاکان خردمند و از شاهنامه فردوسی این بهتر از هر جشنی بر ما یک سال در خدمتتون بودم شاگردی کردم خدمت ملت بزرگ ایران بودم خودم عرض میکنم این شما سرور این رابطه استاد شاگردی بوده و خدا رو شکر میکنم و این یک سالگی رو من به همه شنوندگان عزیز تبریک میگم اونا یار بودن اونا کمک بودن یعنی شما شنوندگان عزیز که تونستین برنامه ای داشته باشیم که اگر خداوند قبول کنه برای آگاهی ملت ایران برای شناخت بهتر ملت بزرگ ایران و دفعه دیگه باید بگیرم مثل اینکه اینکه جماع گفتید دیگه با که جور نمیشه باید هفته میبرم بگیرم نه این هفته میبرم سر, سر خون بله. همه ایرانیان بله, بله. بله. و سپاسگزارم از شما آقای دکتر فریدون جونهیدی من ارز میکنم خدمتون که همین در آغاز ارز کنم تلفن‌های برنامه رو چون تماس میگیرید و سعی میکنیم زمان بیشتری رو برای ها و پیامک‌های شما داشته باشیم 220 و بیست 220 هشتاد و پنج دیویست و بیست دو بیست پنج و شماره پیامک سی منتظر صدای گرم شما و سوالات خوب شما که شروع شده اصل اون یک ساعت قبل از برنامه دو ساعت قبل از برنامه شروع میشه سوالات شما از برنامه پنجره های و با توجه موضوع صحبت. و تقدم و که شما در سوالات داریدن اول من از شروع میکنم از اولین سوال هایی که شده با توجه موضوع برنامه از آقای دکتر از استاد رایدون جنوزی میپرسم ورز میکنم که پایگاه تلال سانی ما www.radiofahang.ir هست و شما میتونید به عزیزانی که خارج از کشور هستند، اقوام، دوستان، آشنایان که خارج از کشور هستند و فارسی زبانانی که می‌شناسید در سراسر جهان اعلام بفرمایید، بگویید که برنامه ما رو میتونن از طریق ماخواره خاصبرد قوم قسمتی که رادیوها هست، رادیو فرهنگ رو پیدا کنند تمام برنامه‌های رادیو فرهنگ رو بشنونن و با توجه به زمانی که برای اونها هست این برنامه ما هنیمه شب تا ساعت یازده شب هست اونا با توجه به این زمان برنامه ما رو هم بشنمن خب ما در این برنامه آقای دکتر بنا دارن با توجه به اینکه به داستان اکوان دی و بیجن و در شاهنامه رسیده این و تقریبا نه ماه قبل ده ماه قبل این داستان از طرف آقای دکتور برای ما گفته شد و خانده شد و رمز شد میخواستم خواهش کنم از آقای دکتر که امشب نگاهی به این داستان داشته باشند و در ادامه بپردازیم به داستان بعدی که نبرد پهلوانان هست از شما فرصتی میگیریم موسیقی میشنویم و در خدمت آقای استاد جنیدی هستیم یاد بفرمایید برای ما بیاری از آن درستان اکوان و بیژن منیجر رو ما سال گذشته خمدیم و خب دیگه لازم نیست بخونیم کسانی که میخوان ما رو که همراه با ما نبودند در سال گذشته میتونند از طریق این سیدی ها که یک مقدارش موسیقی حاضر شده دلد. دلد. و بقیه اشم با از آن حاضر بشه از طریق موسیده ها و ما هم مقدار حاضر شده رو گرفتیم از رادیو میتونیم که از طریق بنیاد نشهور به خدمتتون بریم. و اما داستان اخوان دیو عبارت از اینکه رستم با اخوان دیو میجن که و اخوان دیو به صورت یک کور خر بسیار زیبا که از قامتش از اسب باشه به گله اسبان شاه ایران که خودرو میتازه و اصبان رو پاره میکنه و, و گلدار در حقیقت از کار او گرزیشن یعنی شکایت میکنه و خطور میفهمه که این دیوه هم در آغاز میگوید که خرممند که این داستان بشنود به دانش گراید به دین نگرود ولی چون معنیش یا داوری شود را مکوته کند داوری مفهوم این دیو اینه که وی به م قابل تبدیله به زب... خصوص در زبان های کردی بیشتر مه ها تبدیل به وی میشه. مثلا در زبان کردی سورانی مهمان رو میگن میوان یا اینکه هم رو اصلا میگن هب یا هامن رو که در جلسات پیش گفتیم میگن هاوین یعنی به معنی تابستان در این صورت اکومن که به زبان پهلوینی اندیشه بد هست تبدیل میشه به اکوان و با آسایشی که در زمانی که خسرو پیش میاد و شکستی که بر تورانیان وارد میشه کم کم بر اثر خوشگزرانی ها اکوان دیو یعنی اندیشه بد بر ایران مستولی میشه اینجاست که که خسرو از برترین پهلوانان یعنی روستن بخواد که اکوان رو بگیره و روستن هم در حقیقت فریفتگی ظاهر بسیار زیبا اون شیم و با خودش فکر کنه من این رو بگیرم بهتر از که بکشم از این فریفتگی رستم احوان یعنی اندیشه بد استفاده میکنه و رستم رو سر به هوا میکنه با خود میبره به آسمون منتها اینجا رستم میبینه که باید با اندیشه بد مبارزه کنه یعنی هر چیزی که اندیشه بد میخواد انسان برعکسش رو بگه. احوان از رستم میپرسه که تو رو به دریا بیاندازم یا به کوه رستم اینجا با انیسی مخالفت میکنه و میگه که از دانایان چین شنیدم که کسی که به دریا بیفته روانش همین در همین سرای بماند تا به دیگر سرای نمیره پس تو منو به کوه بنداز که پرنگ و شیر بیاند در حقیقت باز رو چنگال مرد دلیر رو ببینن اکنون برعکس میکنه و او رو به دریا میدازه وقتی که به دریا انداخت روستم به کنان میاد و اول اسب خودش رو پیدا میکنه چون وسیله میخواد با اندیشه بد مبارزه کردن و این بار که اکوان دیب رو میبینه دیگه گول ظاهر او رو نمیخوره و او رو میکشه و به پایتخت برمیکرده این داستان همطور که خود فردوسی در آغاز میگوید ولیکن چون معنیش یاداوری شبترامو کتخ کند داوری داستان خیلی است که مبارزه با اندیشه بد باشه خب این یه داستان یه داستان دیگه هم داستان بیژن منیجه است که از عشق و رنگ و نگار و دلدادگی و مرارتهای عاشقی و به چاپ بیژن اینا همه رو پیشتر از این ما بیان کردیم که دیگه من بهتر میبینم که اونها رو دیگه امروز تکرار نکنیم تا به بخش از عاشقانه ترین داستان های یکی از ترین داستان های جهانه برد. بله گفتید برای ما بخش هایشتو اگر بفرمایید بد نیست حالا تکیه های اگر در ذهن دارید اون ده هزات زیبا رو بفرمایید چون موسیقی هم آماده کردیم با توجه به اون فضا و اون بفرموید ممنون میسیم مصداد <تصفح> جاییست که بیژن رو گرفتن دست برست برست بردن پیش افراسی ها. و آقا میگه که گرازان به چنگال و شیران به دندان و شیران به چنگ میتونن با حریف خودشون مبارزه کنن و من جوری دست بسته نمیتونم با کسی مبارزه کنم اگر شب دستور بده که به من یه اسبی و یه گرزی بدن گذین کن توران هزاران سران اگر زنده اگر یکی از رو زنده موندن به مردم مدار و افراسیاب میگه تو این کار کردی و انتظار داری که ما اسبو گوزم به تو بدم تو سران تورانی رو در از بین ببری اما او همین میگه که من اگر زنده اگر هزار نفر رو اگر زنده موندن به مردم مدار را گل زیبا میکنه خانه ما را برنامه بی شما ای کاش هر روز یک شنبه بود ما خودمان به وسیله رایانه زبط میکنیم و هر روز گوش می دهیم هم اینجا هستش بذارید ببینم تلفون این عزیز صف 913 146. بخشی از تلفون رو گفتی همه تلفون همه پیام 913 که آره بخشی از ب... ب... شما دسته شماره وسط رو ندستم درود بر این خانه گلافشان شما و گلباران شما و درود به این اندیشه پاک ایرانی که شاهنمار گل میبینه شاهنمار سر میبینه شاهنمار کوهسار زیبا میبینه شاهنمار آسمان میبینه شاهنمار خوشی درختان میبینه اگر روزی برسی که همه ایرانیان به این مرحله از اندیشه برسند روز, روز فراخی خواهد بود در همین راه هم ما کوچش میکنیم با امید خدا هفته پیش یه بانوی گرانمایی از من پرسید که مادر اسفندیار کی بوده نه. و من گفتم الان بیاد ندارم البته در احسودها ها اومده کتایون و که بود مادرش شده پرنیان خارب شده جامعه پرنیان خار شده هم در برش و منطقه اون از افزاده های شاهنامه است و من از بخش سروده های دقیقی این سبیت رو آوردم برای آگاهی اون بانوی عزیز و کسان دیگه که گوش میکنن ببینیم که افزادهگان چه کار کردن در شاهنامه دقیقی اومده زناهیدش درش آمد گران ماهشا یعنی گوشتاسب ناهید شما ناهیدش ما آمد گرامای شاه دو فرزند مانند خورشید و ماه یکی نامور فروخ اسفندیار شهه کارزاری نبرد, نبرد سوار تشروطن گرد شمشیرزن شهه نام بردار لشکر شکن. این مادر در اسفندیار بوده به نام ناهید اما در افسده ها با نام کتایون غیصر از شیاز شده بله. خب از این در زبان, زبان دادن در شانوم همه جامعات زبان دادن یعنی قول دادن از زبان دادم که من هفته آنده این رو خواهم گفت به این بانو تقدیم کردم اما بعد یک نبرد اتفاق میخده که در نسخه های موجود آوردن نبرد, نبرد دوازده رخ یا یازده روخ یا یازده پهلوان این ها درست نیست نبرد نبردهایی رو این نبرد اصلی افزودن با نام های خیلی شگفت مثلا فرض کنید که نام زنگوله من میپستم که آخه در ایران و توران که فرنگ ما رو داشتن ممکنه کسی اصول زنگوله بزاره. یا اخواست اخواست یعنی ناخواسته چطور ممکنه در ایران و باستان گاهگاه گاه مادران در بختیاری و لورستان هستن الان کسانی که چند تا دختر میارن بعد میگن دختر بس. بله. اسمش دختر بس. یعنی خدایا به ما پسر بده. باز آذری هم داریم ما. رز بس میگن این دختر یعنی خب چه بهتاری من نمی‌دونستم. بعد که پسر از خدا میخوان. حالا که پسر به وجود شده، ممکن است اسمش رو اخواست. یا بزنن سیامک که قهرمانه اسوران به نام سیامک. یا برته یا همین نام‌ها. اینا همین نام های نادرستی که بعد من در بیراش خودم ثابت کردم که این بخش ها رو بعدها افتودن به شاهنامه. نبرد برد بوده نامش و در اینجا دو فهلوان ایرانی و تورانی با هم پیر پیران پیر و گودرز پیر با هم دیگه جنگ میکنن که ستمش به سپاهیان نرسه. یعنی پس نامه های زیادی که با هم دیگه رد و بدل و در گفتار حضوری هم به اینجا می که فقط این دو وقت ده تا تا یازده تا دیگه بهش اضافه کردن که بشه نورده مثلا 11 روخ بیاری از آن من این رو آغاز میکنم خواهش من بفر بکا خندر آمد پرازاردل اما کاردانان حوشیاردل در حقیقت افراسی میگه چون داستان بیجن منیچه تموم شده و رستن بیژن رو گریزانده به طرف ایران و بالاخره این آوازش کل میشه در توران و میرن اینا که ببینن که پهلوان ایران اومد بیژن نهشک کشید برد بیرون و اینا متوجه نشدن اینجا به دنباله اون داستان میاد به کاخندر آمد پرازاردل عباکاردانان خوشیاردل بر ایشان همه داستان بنگو گذشته کزشت سخونها همه کرد یاد کتاب نهادن به شاهی کلاه مرا گشت خورشید و تابند ماه یعنی خورشید و ماه تابان برای خاطر من میگشت. البته در توران مرا رو بود بر دست رست انان مرا بر برمت کس بید هنگام زهنگام رزم من و چهر باز نبود دست ایران به توران دراز دلاغور شدن مردم نادلر دوزدندر آمد به بارین شعر بر این کینه گر کار سازیم زود و گرنه برارند زین مرز دود سزدگر کنون گرد این کشورم سراسر فرستادگان گسترم بیاریم بر گرد ایران سپاه بسازیم هر سویی کی رزمگاه همه موبدان رای هشیار خویش نهادند با گفت سالار خیش که ما را ز جیهون بباید گذشت زدن کوس شاهی بر آن ته دشت نویسندهٔ نامه را پیش خواند سخونهای بایسته چندی براند فرستاب نامه به هر کشوری و هر نامداری و هر محتری سپخ خواست کندیشه جنگ داشت سپی جند به گونه دل تنگ داشت پس آگاهی آمد به پیروز که آمد ز توران به ایران سپاه، یعنی به که خطور آگاه امد جفا پیشه بدگوه هرف ز کینه نیابد شب و روز خواب براورد خوحت حمی سرزنگ زهر سوپر صاد لشکر به جنگ خروشی بر آمده درگاه شاه که ای قهرمانان ایران سپاه کسی کو انان و رکیب نباید که یابد به خانه شکیب مخصوص کسانی که به مرحله ای رسیدن که میتونن جنگ بکنن انان و اینه یعنی که میتونه سوار اسب بشه میتونه گرج بزنه میتونه اسب رو راهنمایی کنه بزرگان هر کشوری با سپاه نهادند سر سوی درگاه شاه برای گنج های که هون واغاز کرد سفه را درم دادن آغاز کرد اینه چند بار رفتن بازم بعد نیست که بگم برای اینکه پیشتر از جنگ به سپاهیان دست مزدی این سالانی را می که اونا این پول رو بدن به خانواد. زن و فرزند و خانوادهشون که در قیابشون در از, از بابت مزید. زن و فرزند خیال فرمانه باشه نشستند برزین به فرمان شاه سپهدار گودرز پیش سپاه میبینید که در حقیقت توس سپه سالاری جان بود در مولدهای گذشته ولی اینجا سپه سالاری از توس گرفته میشه و به گودرز داده میشه به گودرز فرمون بود پس چهریار رفتی کمر بسته کارزار نگر تا نیازی به بیداد دست نگردانی ایوان آباد پست کسی کو به جنگت نبندد میان چنان کن کش از تو نیابد زیان نگر تا نجوشی به کردار توس نبندی به هر کار بر پیل کوس این فرمان فرهنگ ایرانه که میرید به جنگ دشمن ایوان آباد رو پست نکنید کشتار را از بین نبرید کسانی که با شما جنگ ندارن با اونا جنگ نکنید فقط با سپاه کشور بردن. کاری که برعکس در طول هزارها و همواره با ایران کردن اومدن درختان سوزوندن و کشتارها رو ناماگیر خبا و اینصنها رو کشتن و زنان رو به بردگی بردن و فرزندانو بردگی بردن خون ریختن بی‌شمار که دیگه من نمیخوام حالا اینا رو بگم این فرهنگ چند هزار سالی چند هزار سال ایرانه که فقط با کسی بجنگید که او با شما می‌جنگه دفاع م... نه حالا الان ببینید داره ب... میره به جنگ آه. آه. دیگه اینجا دفاع نیست آه. ولی تعرض کرده تعرض کرده میخوان بر... بله دفاع میشه داره بر... پارز میشه بل. حالا میگه که فقط با اونا بچنگید پارز جای پاتکه پادرز پادرز بله به بل. هر کار با هر کسی داد کن زنزان نیکی دهش داد یاد کن چون این گفت سالار لشکر شاه که فرمان تو برتر از شید ماه بدان سان شوم کم تو فرمان دهی که مرایمی یعنی تو فرمان دهی تو شاه جهانداری و من رهی به لشگرگه آمد دمادم سپاه جهان شد گرد سواران سیاه اینجا که دمادم رو میخونم باید به کنم که گروهی از کسانی که تصور میکنن شاهنامه میدونن این واژه رو همیشه گفتن دمادم یعنی اصفا وقتی میان دومش بدهند در حالی که خوب اگر دوم باشه یکی یک سوی اون سر اصفاست باید بگیم سر آدم دو ما نمیشه در شان ها به بگیم سه شب دمادم ناپورد آخری سه شب دو ما بود خون خیلی شکفتنگیزه که بالای اینها همه او گذاشتن و اینا رو از کسی به نام مشتبه بینوی به داشتیم که گوینده رادیو خارجی بود باید اینجا شاهنامه شناس شد و تابوت مثل یک پادشا سلطنت میکرد در شاهنامه و دیگران رو همه اصلاحات میکردن در حالی که نفس شاهنامه رو نمیشناخت اگر میشناخت لاغل این رو وقتی که با ابلاغ شد مدیر عامل یا مدیر کل شاهنامه فیدوسی بنیاد شاهنامه فیدوسی گفت اولین کار ما کار خوب ما اینه باید که کاغذ این رو بخریم. سرزفه که این آقا چی بود کاغذشو بخریم اولین کار کاغذ خیردن انبار کردن بعد اون وقت چه کردند؟ کردن تا مونده که بود و بعد از اونم که شاگردانش اونجا رو بعد با ابلاغ اداره میکردن کاری انجام ندادن در جهت اینکه که شانومه بشه در صورت شما بدونید که در شانومه همه شانومه همه کسانی هم که استادم هستن پیروی میکنن از این سخن مستعوم مینویی که دمادم رو که یعنی لحظه به لحظه که ما باجی دم به دم رو هم داریم بله واخه دم دم به دم مثل سراسر سر به سر ببینید اینجا هست همه دمادون موضوع می نه اجازه میدید تعدادی از پیام کارو بخونم سوال کردن حالا یه فاصله افتاد ای بعد عرض می‌کنم خدمت شما ای اینجا اومده که ایرانی زانو نخواهد زد حتی اگر آسمان کوتاه تر از قامتش شود اینو یکی از گذرگان گفته که از طرف آبار رحیم تغییزاده تقدیم به همه کسانی که عاشق ایران هستند شده سر بلند باشید سر به با آسمان بسایید با داشتن فرهنگ و نیاکان برپرمنشی که ما برخورداریم از او سر رو باید با آسمان بلند کرد سلام خدمت استاد به بیته... که که رستم گلی بود در سیستان منش کردم رستم دستان داستان. رستم داستان از فردوسیست سجاد از دیار کریمان ببخشید این پس پیش میشه من در این باب اینا رو به هم درستش کنن یعنی از فرستان دوان پیام پوزش میگوید دیگه از <تس> شما بوده این شیر از فیضوسی نیست نیست از افسده هاست و خیلی خیلی افسده نادرست نیست تمام بزرگان ایران رستم رو ستارش کردن و خود فیضوسی هم رستم رو ستارش کرده این نیست ما وقت افتخارات خودمون رو اینطور طور مقدار کنیم اون اَبسوندگون این رو به شوانا مَعبسودند بله. با درود بر شما و استاد جنیدی گرامی در زبان مازندرانی به پسر ریکا و به دختر کیجا میدیم ریشه این دو مربوط به چه زبان و چه زمانی است با سپاس حمیدجزا از سامسکنده سامسکنده مازندرانه مازندران من تو مطرح چیز بودم در اون جنگل بادله ساری بودم و پژوهش میکردم و زمین چند قطع شعر بسیار زیبا در ستایش جنگل و اینها اونجا سرودم که الان جاش نیست میدونم که سناسکنده کجاست ریکا در زبان پهلوی ریتک یعنی پسر جوان بعد این در زبان لوریو گردیب تبدیل به رود میشه رود, رود که از ریتک ریتک, ریتک رود و در زبان تبری اعتمالا زبان گیلکی امریکا شده از ایران باستانه کیجا هم در کنچک کنیچک بوده کنیچک که بعدا در یکی از زبانهای کردی شده کناچه در یکی دیگر زبانهای کردی شده کچ و در مازندران گیلان شده کیجا کنیچک در زبان زیبایی بلوچی هم هنوز برجا است کنیچک یعنی معشوق کوچولو از میشه کن اوستایی یعنی عشق کنیچک یعنی معشوق کوچولو دوست داشت یعنی کوچولو از اونجایی که دخترای 6 ساله در آغوش همه میرن همه رو با آغوش میگیرن همه رو میبوسن همه رو ناز میکنن به چیزی که همه اونا رو کنه و در حقیقتی شمع روشن خانواده هستن این نام رو فرهنگ ایران به دخترها داده کیجا از رشید کنه چک گرفته شده بله سلام منده نباشید آقای دکتر جنیدی برای ما بفرموی جامع جمعه از کجا اومده و به حقیقت چی هست آیا از آن جمشید سپاس مرادی شاد باشید جام جمع با اون ترتیبی که میگن همه چیز درش پیدا بوده و اینها جزب اما پیدا شدن جام در زمان جمشید و یکی از برترین در حقیقت پدیده های فرهنگی جهانه که مربوط به دستیابی ایرانیان به سفال میشه که خود وجود سفال زندگی رو گونه گونی خیلی خوب بهتری میده با آسودگی بهتر و زندگی رو خیلی خیلی خوب میکنه برای که با سفال ما میتونیم همه گونه آوند یعنی ظرف بسازیم که با بیشتر س... از اون با سنگ نمیتونیم این پدیده زیبا که در متون پارلمانی ما در ریاض شده که در رو ماه فروردین روز خورداد اومده که در ماه فروردین روز خورداد جنب پتمنک را حج دوشخ اپاچ آورد یعنی جم، جمشید پیمانه رو از دوزخ باز آورد مخصوص دوزخ اینجا آتیشه یعنی پیداست که یک کسی چیز زرف گلینی ساخته و بعد این از دستش افتاده تو آتش. و بعد از مدتها که تونستن آتش رو مهار بکنن و وقتی دیدن این تبدیل شده به یک چیز مانند سنگ و این این حقیقت پیدایی و این اکتشاف چهره زندگی رو و باستان دگرگون کرد و روبه زیباتر برد اون وقت بعدا داستان سران ازش جام ساختن که آسمون و زمین رو توش همه دیده میشه دل. درود بر شما شکله دارم از آقای هدایتی بسیار بسیار پیام دادم نخاندید از استاد خواهش کنید در مورد تاریخی بلوچستان صحبت کنند خانم ساغر از زاهدان ما در این بروچستان صحبت کردیم اما باز هم می‌خونم همشو خوشبختانه من پیشتر از این از بون بلوچستان یاد کردم و از اینکه کنه کنه چه کنه میگن و این سرزمینی خشکی که واقعا مردمش اینقدر سخت و اینقدر پاک و راست هستن یعنی واقعا همه سجایای اخلاقی ایران و باستان رو در حقیقت در فقط یک،, یک نقص در اونجا هست این که نوروز رو خوب جرش نمی گیرن. جشن ایرانی رو می نوروز رو نمی گیرن. من از اینجا پیام میدم به بلوچستان گرامی جرشی نوروز یادگار نیاکان ماست بگیرید و شخو هم بگیرید خواهش می کنم افضاد به من خبر برسه که در بلوچستان نوروزی گرفتن اما بلوچستان در حقیقت در شاهنامه با نام روحام از اشیاد میشه. و روحان پسر گودرز نشانه این که بلوچ و کورد با هم یه نژاد مشترک داشتند چون گودرس یعنی کردستان و آزربایجان و دیگه و بلوچ و زبان بلوچی در پهنه ایران امروز کهانترین زبانه یعنی هنوز از همه زبانها البته کردی خیلی خوبه کهانه ولی بلوچی بلوچی هنوز کهانتره اونم به علف سرسختی بلوچان مبارزه می یه تغییر رو نمی و دریق و درد که در استعمار در زمان پادشاهان غیر ایرانی قاجار بخش از همی از این بلوچستان رو جدا کرد ولی خوب بالاخره در هر جا که بلوچه هست همون ایرانه و در کتاب داستان ایران در باره بلوچستان من بیشتر توضیح خواهم داد همین اندازه فعلا امروز بس باشه که اونا یکی از زبانهای کوهن ایرانی رو دارن در پهنه ایران روز ولی بیرون البته زبانهای هشت مثل یزگولانی در تاجکستان خیلی خیلی کوهنه پشتو همچنین خیلی کوهنه زبانه کوهن داریم اما زمین بدونید که شما پیوسته با با نه از آقای دکتر سوال کنید چطور می توانیم شاهنامه را روان بخانیم و فهم آسان داشته باشیم اگر شانامی ویرش منو بخونید که سارای باهار هفته پیش اومدی که دردونم بخواد بخونه شما مطمئنن ولی شانام که این افسده ها داره حق میدم بهتون من الان خودم اینجا خستوم میشم خستوی خستوان یعنی مغیر اقرار میکنم که در سال 1958 کتاب زندگی و معاجرت آریایان رو نوشته بودم و مخواست بری به چاب. ولی تا اون زمان خودم جرعت نکرده بودم که پیش گفت رو بخونم از بس که سنگین بود از بس که سخنه پیچیده ای رو در رو داشت بالاخره روز با خودم اندیشیدم که تو می‌خوای نخوسی تفسیر شاهنامه جهان رو به چاپ برسونی خب باید این پیشگفتار رو بخونیم به خودم فرمان دادم که باید بخونم خوشبختانه در اون فرمان بازم روان خود فردوسی و روان نیاکان یاری کرد که اون اشعاری رو که من در, در کتاب زندگی ماجرا تو همه از فردوسی است قبول دارن. بیشت هزار نفر رو من گفتن که شاهنامه رو نمیتونن به دلیل همون افتادو از شاهنامه ویرایش فرزند فردوسی رو دخونید خیلی خیلی مانند آفتاب درخشان. شما برنامه پنجره های روی مختاب رو میشنوید آقای دکتر فریدون جنیدی داستان های شاهنامه رو برامون میخوانند ما صفر هم نگفتیم رویر هم نگفتیم که عالم... جلد ثبومه آغاز, این... آغاز جلد ث که الان به صفحه رویه شانزده. رویه یا همون صفحه 16 و عرض میکنم حضور شما تلفن های ما دویست و دویست چهارصد هشتاد پنج دویست و بیست، چهارصد هشتاد و پنج و بیست و هشتاد و هشت دو سفر و بیست و, و هشت دو سفر تو سفر و شماره پیامک م سی و و, و, و, و میکنم تعداد زیادی پیامک اومده و گفتند که میخوان ارتباط برقرار کنند با بنیاد نیشابور و آی دکتر جدی رو ببینند و همینطور شاهنامه میخوان تهیه کنند من تلفن بنیاد نیشابور رو خدمتتون می کنم که همین الان آن آقای دکتر اشاره کردم <تصفيق> استاد جنیدی من دادم و من خجالت کشیدم که چرا حفظ نیستم هشتاد و هشت نود و شش بیست و هفت هشتاد و چهار هشتاد و هشت نود و شش بیست و هفت هشتاد و چهار این شماره تلفن بنیاد نیشابور هست شما میتونید چاهنامرم اونجا تحییب بفرموید خب تلفون های شما هستی سریع تر به ما برسه ما براموریزی بهتری خواهیم کرد که بتونیم تلفن‌ها ها رو پخش کنیم و همینطور پیامک های شما رو من سعی میکنم در فرصت ها بخانم و از آقاییوکتر خواهش میکنم که پاسخ بدن موسیقی گوش میکنیم در خدمت شما هستیم چهل کلید چهل نکته از نقصد حسینی چهل پیامک از ابرت های آشورا برگرفته از کتاب هماسه حسینی استاد شهید مرتضا متخری رحمت الله حلقی چهل ورگزیده از میان مشترکین همراه افرد اصانی ورگذیدگان در سایت شرکه فرخنگ ریدیو فرخنگ دات آی آر همکنون تا عربین حسینی سامانه 3558 آماده دریافت پیامک های شماست شاید که یک